داشته باشیم و به نظر خطرناک نرسه ولی خب همیشه همه چیز خوب پیش نمیره گوش کنیم ببین آقا پلیس که حواسش به همه چیز هست چی میگه میشکنیم ما یه زمانی توی این ایرانی وقتی که دور هم جمع میشدن شددن ها میگفتن که خوالا جمع خونوادگی آماده بشید میخوایم عکس بگیریم خانواده ها خاوم ها آقایون میرفتن آماده میشدن شدن می که میخوایم عکس بگیریم وقتی آماده میشن دوربین عکس می گفتن. الان چی میگن میگن همین الا یهویی اون او وقت تو جمع خانواده مادر خواهر نشستن محرمم حسن با یه فضای باز این عکس رو یه پسر بچه سی۴ ساله که میخواد بگه من و خالم یه عکسو رو میکنه. قافل از اینکه خاله شوهری داره که از انتشار این عکس بیم داره ایداد بیداد اعد... همین رو میخواستین که خاله با یه فضای باز عکسش بره تو اینترنت؟ نکنید نکنیم نکنند اگه میخواین، عکس همیه الان یه هویی بگیرین اولا یه هویی نگیرین اجازه بدین خوب خاله جان فضای بازشو ببنده مقدار دوما بدون اجازه شوهر خاله جان این اکسو تو شبکه های اجتماعی نذارین چرا اینجوری میکنین آخه شوهر خاله تون داره داغون میشه خاله تون ناموس شی... چیزه یعنی ناموس شو هر خاله است ناموس شیعه که چیز خانم چرخنده بود نمیدونیم دیگه والا آقا حالا باز تا دوره هم جمع میشین موبایل در برین همجوری زرت زرت عکس یویی بگیریم بزنیم های اجتماعی آخرام شوهرخاله ها بیاد گردنتونه بشکنه گوش نمیدین دیگه گوش کنین حقتونه گوش کنین بین آقای پلیس فتا که حوازش به همه چیز از راست میگه خوبونه